هزار افزان برنامه از گروه جوان و فرهنگ به نام خدای ادب آفرین سلام شب شما همراهان ادب دوست به خیر و شاد کاامی. ها حکایت های بازگو از هزاران سال قبل نیستند. بلکه روایت زندگی روزمره ما هستند که در بطن خودشون پیامها و حکمت های ارزنده ای رو نفته دارند. در برمی این هفته هزار افسان، سری می زنیم به دنیا پرنمز و راز مردمان سرزمین ویتنام و افسانهای را از این سرزمین برای شما نقل میکنیم به نام افسانه خرگوش وکیل برگرفت از کتاب قصه از ازبکستان و گرجستان با ترجمه از ابوالفضل آزموده روزی روزگاری در زمانهای خیلی خیلی دور در سرزمین ویتنام دو همسایه در کنان هم زندگی می کردن که هر دوشون سیاد بودن و زندگیشون رو از راه سیادی سپری میکردن روزی از روزها دو سیاد افثانه ما که اسمشون فان و سان بود برای سید گوزن به طرف جنگل برافتادند. فان مثل همیشه تورش رو روی زمین پنگ کرد ولی سان تورش رو روی زمین پن نکرد و رفت و اون روی درختی آویزون کرد و هر گوشش رو به شاخهی بست خلاصه اونا توراشون رو پنگ کردند و به خونه هاشون تا فردا صبح بیان و ببینن آیا چیزی سیت شده یا نه فردای اون روز سان که تورش رو روی درخت بسته بود قبل از دمیدن سپیده صبح به راه افتاد و رفت سراغ تورش که ببینه چی به دامش افتاده. خیلی امیدوارم بود که یک گوزن چاق و چله توی تورش اسیر شده باشه. اما وقتی به جنگل رسید دید که حتی یه پرنده کوچیکم توی تورش نیفتاده بود. سان با ناراحتی گفت اه چقدر بدشانسی آوردم. تمام دیشب خواب کباب گوزن رو می دیدم خیلی وقتی که کباب گوزن و یهو نگاهش به طور فان افتاد که یه گوز چا و چله توی اون دست و پا میزد. سان با عجله خودش رو به طور رفیقش رسوند و با حسرت گفت چه شانسی داره این فان آ. هجب گوزن چاق و چلهی چون میده واسه یک کباب خوشمزه و لذیذ کاش کاش این گوز توی تور من افتاده بود اون وقت یه دفعه فکری به سرش زد سری تکون داد و گوز رو از تور فان بیرون کشید و اونو میون تور خودش که بالای درخت آویزون شده بود انداخت و چند دقیقه بعد هم به سرعت از اونجا دور شد و به خونش برگشت و دوباره راحت خوابید. خورشید بالا اومده بود ولی سان هنوز تو خواب بود تا این که فان به سراغش رفت و اونو از خواب بیدار کرد و گفت دوست عزیز مثل اینکه فراموش کردی باید به سراغ تورایی که توی جنگل جنگرپنگ کردیم بریم خورشید بالا اومده زود باشی که بیدار شو سان با لحنی ساختگی گفت مم. بله دوست عزیز پاک فراموش کرده بودم امیدوارم دست خالی برنگردیم و بعد هر دو به طرف جنگل دو رفیق وقتی به جنگل رسیدن دیدن توی تور فان که روی زمین پن شده بود هیچ حیوانی اسیر نشده و تور خالی خالی سان با ظاهری ناراحت گفت دوست عزیز ناراحت نباش حتما دفعی دیگه یه گوزن چاق و چله توی دامت اصیر میشه برحال چی چیکار میشه کرد؟ متاسفم فان با ناراحتی آهی کشید و به تورش نزدیک شد و دید که جای پای گوزنی در اطراف اون به چشم کاره تازه چند تار موی گوز هم تو دامش باقی مونده و با تعجب فریاد زد سان! سان! ببین جای پای گوز اطراف تورم پیداست سان گفت خب لابد از کنار تورت رد شده و رفته اینکه که نداره فان گفت ولی نه ببین چند تار موی گوزم توی تور جامونده و سان رو به دیدن جای پای گوزن و تارهای موی گوزن دعوت کرد سان در حالی که سعی میکرد خودش رو سرگرم کاری کنه با خونسردی گفت فان عزیزم اینا نمیتونه چیزی رو ثابت کنه بهتره به سراغ تور من بریم خدا کنه حداقل من امروز شانس آورده باشم و یک گوزن چاق و چله توی دامم افتاده باشه. فان با تعجب گفت: "کوه توی توری که روی درخت پنگ کردی؟ <تصفح> شوخی بامزه ای دوست عزیز." <تصفح> سان گفت: "ولی کار غیر ممکن وجود نداره فان. البته اگه آدم خوش باشی." بعد آرون سراغ تورش رفت و در حالی که سعیم خودش رو خوشحال نشون بده با هیجان فریاد زد زب... فن فن فن یه گواز یه گواز توی تور من افتاده گفتم کار غیر ممکن وجود نداره بای خدای من چقدر خوشحالم فن با تعجب و ناباوری به طرف رفیقش رفت و دید که لاشه گوزن چاغ و چله‌ای در برابر وزش با در آویزون از این طرف به اون طرف حرکت می‌کنه. فان فورا فهمید موضوع از چه قراره و به رفیقش سان مشکوک شد. آن بعد از مشکوش شدن به سان به فکر فرو رفت و با خودش گفت نه نمیشه تا با حال سابقه نداشته که گوز از درخت بالا بره و در نوک درخت خودشو داخل دام بندازه نه نه ممکن نیست حتما حتما گوزن به دام من افتاده بوده و سان تمکار اونو در و داخل دام خودش انداخته و این و این یعنی یعنی دزدی ماست بله دزدی ماست باید باید به دادگاه برم و از سان دروغو و شکایت کنم همین فردا صبح زود این کار انجام میدم فردا صبح فان به نزد غازی رفت و تمام ماجرا رو برای اون تعریف کرد و غازی هم فورا سان رو به دادگاه احضار کرد سان با غیافی حق به جانبی گفت جناب غازی، جناب غازی، شرماوره که این مرد به من تهمت دزدی میزنه. من از شما، من از شما آجزانه میخوام میون ما قضاوت کنید جناب غازی غازی بعد از شنیدن صحبت های هر دو رفیق سر انجام گفت طبق قانون سید مال اون کسیه که در دامش افتاده باشه. حالا این دام هر کجای که میخواد باشه روی زمین بالای درخت مهم نیست اتهام شما آقای فن وارد نیست بنابراین رفیق شما یعنی آقای سان که دامش بالای درخت آویزون بود تبرئه میشه و شما باید به جای خسارت و اعاده حیثیت دو قوزن دیگه به اون بدین فان اعتراض کردن گفت ولی ولی چه می‌خواستی این با عقل جور در نمیاد که یه گوز بره برای درخت تازه من خودم با چشای خودم چند تار موی گوز رو توی تورم دیدم حتی رد پاشم کنار تورم بود خازی گفت ساکت باشید آقای فان ساکت باشید فان گفت چه نامخازی من من سه روز فرصت میخوام تا حقانیت خودم رو ثابت کنم آیا دادگاه محترم این فرصت رو به من میده؟ قاضی مکسی کرد و گفت مم. بله به شما سه روز فرصت داده میشه فقط سه روز نبیشتر به بعد قاضی تحکید کرد بعد از سه روز دیگه درست سر ساعت هشت صبح هر دوی شما باید در دادگاه حاضر باشید و اگه هر کدوم از شما حتی یک دقیقه فقط یک دقیقه هم دیر کرد تقصیر بر احده اونه متوجه شدید آقایون سان و فان سری به علامت تصدیق تکون دادن و از دادگاه بیرون امدن فان بیچاره در به در به دنبال شخصی عاقل و دانا میگشت گشت که وکالتش رو بر عهده بگیره و حق اونو در دادگاه ثابت کنه اما اینو بشنوید که تا اون موقع مردم نمی دونستن که خرگوش تا چند از حیوان عاقل و دانایه اونا درباره حکمت و دانایی خرگوش چیزی نشینده بودن فان همینطور که دنبال یه وکیل مدافع میگشت در سر راه خودش به خرگوشی رسید خرگوش وقتی سیاد افثانی ما یعنی فان رو دید بون گفت ای مرد محترم کجا میری و چرا اینقدر پریشونی؟ فان گفت دنبال وکیل میگردم در دادگاه دعوا دارم خرگوش گفت میشه بپرسم با کی و چه دعوایی داری؟ فان که دل پری داشت موضوع رو از اول تا آخر برای خرگوش تعریف کرد و به اون توضیح داد که فقط سه روز برای اثبات حقانیتش فرصت داره و بعد اضافه کرد و گفت قاضی به ما امر کرده که حتما باید سر ساعت هشت صبح بعد از سه روز در دادگاه حاضر باشیم اگه هر کدوم از ما تخییر کنیم گناهکار محسوب میشه خرگوش گفت کار تو فقط همینه اینکه کاری نداره اونو بر احده من بذار واصلا اصلا ندرس من حقت رو ثابت میکنم فان پوست خندی زده و تو تا به حال خرگوش وکیل مترفق ندیده بودم خرگوش گفت از این به بعد میبینی من هر شده حقت رو میگیرم خب اگه حقانیت تو رو به اثبات برسونم چه پاداشی به من میدی؟ فان گفت اگه واقعاً بتونی حقم رو بگیری هرچی پول بخوای در اختیارت میذارم خرگوش خندید و گفت <تصفيق> پول؟ آخه من پول رو میخوام چیکار کنم پول که به درد من نمیخوره من فقط موز میخوام مقدار زیادی موسی رسیده بود شیرین و بعد قرار گذاشتن پس فرد و صبح فان به سراغ خرگوش بره و با هم به دادگاه روز سوم پان سیاد صبح زود از خواب بیدار شد مقداری موز رسیده و شیرین با خودش برداشت و نزد خرگوش تو جنگل رفت خرگوش که از دیدن موزهای رسیده و شیرین خیلی خوشحال شده بود تند تند شروع کرد بخوردن موزها حالا دیگه خورشید بالا اومده بود و ساعت نزدیک هشت بود فان که استراب دید رسیدن به دادگاه رو داشت با نگرانی گفت خرگوش عزیز خرگوش عزیز عجله کندی که چیزی به ساعت هشت نموده خرگوش با خونسردی گفت فکر میکنی که موضوع بر سر دیر کردن یا نکردنه نترس به من اطمینان داشته باش و خودت رو نگران نکن چه موز شیرینیه اما فان نگران بود و نگرانی اون هم بیهوده نبود خلاصه اونا راه افتادن و ساعت نه به دادگاه رسیدن قاضی با دیدن خرگوش با تحجب پرسید این خرگوش اینجا چیکار میکنه ها؟ خرگوش با حاضر جوابی گفت قربان، من وکیل مدافع این سیاد بدبخت و بیچارم جناب غازی اومدم تا از حقش دفاع کنم قاضی و سان از اینکه یه خرگوش وکیل مدافع یه انسان شده پوسخند زدن قاضی رو به فان سیادت کرد گفت مگه نگفتم سر ساعت هشت صبح اینجا باشین ها این همه تاخیر برای چی بود تا حالا کجا بودی خرگوش به تندی به میون کلام قاضی پرید و گفت جناب قاضی خواهش میکنم ببخشید اگه ما تیر کردیم این شخص هیچ تقصیری نداره همه تقصیر پای منه باور کنیم موضوع... موضوع از این قرار بود که صبح زود را افتادم که بیام سر راه به چیز عجیب و قریبی برخورد کردم که مدت زیادی نتونستم به خودم بیام اصلا از تعجب جناب غازی خوشکم زده بودم از اون روزی که دارم زندگی میکنم تا الان چون این چیز عجیبی ندیده بودم آقا محترم اگه شما هم بودید نمیتونستید از تجب از جاتون تکون بخورید خاصی پرسید این چه چیز عجیبی بود که این طور تو رو به تجب واداشت کرگوش گفت قاضی محترم وقتی که عجله داشتم که زودتر به دادگاه برسم، سر راه خودم ماهی زیادی رو دیدم که از درخت بالا می و تمامی شکوفه ها رو می خوردن. این ماهی ها چنان با سرعت از درخت بالا می و چنان با سرعت شکوفه ها رو می که من از تعجب نمی حتی یک قدم به جلو بردارم. گازی با عصبانیت گفت، این دروغات چیه که به هم می خرگوش نادان آخه چطور ممکنه ماهی از درخت بالا بره ها؟ کس در زندگی شون چیزی رو ندیده نشنیده خرگوش خنده ای کرد و گفت: <تصفيق> آقای غازی من برای شما تعریف کنم که ماهی بالای درخت رفتن و شکوفه ها رو خوردن و شما باور نمی کنید و میگین من دروغ به هم میبافم اما این سیاد دروگو به شما میگه که گوز رو میان دامی گرفته که بر بالای درخت آویزون بوده و شما میگید حق با اونه و درست میگه آقای قاضی اون وقت میشه باور کرد که گوز از درخت بالا بره آیا شما تا به حال چنین این رو دیدید که با سماش از درخت بالا بره قاضی که تحت تحصیل حرفای خرگوش قرار گرفته بود فکر کرد و گفت آفرین آفرین بر این حوش و دانایی اقباطوه و بعد قاضی اعلام کرد آقای سن باید هرچه زودتر گوزنی دو که از آقای فان دزدیدی دیدی به اون پس بدی و به عنوان جریمه دو گوزن دیگه به آقای فان باید بدی بله از اون زمان به بعد بود که مردم سرزمین ویتنام متوجه شدن خرگوش حیوان عاقل و دانایه و از اون روز به بعد این حیوان رو صوفه یعنی خرگوش دانا نامیدن براتون نقش کارنامه افسانه خرگوش وکیل بود از مردمان سرزمین ویتنام برگرفته از کتاب قصه‌های ازبکستان و گرجستان با ترجمه‌ای از ابوالفضل آزموده بله افسانه ها در ظاهر حکایت های ساده و کم عمق و از ازر اجتماعی با زندگی روزمره مردمان هر سرزمین پیوندی ناگسستنی دارند افسانه ها در کنار دستها و چشمهایی رخ می دن. که واقعیات رو لمس میکنن و اونا رو میبینن بر ماست که قدر این گنجینه های ادبیات شفایی رو بدونیم و اونا رو حفظ و ثبت کنیم هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت ساله پور ویراستار فری برس نوبخش. اجرا مهران دوستی صدا بردار حدیه سیفیکار چایه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود